عادت تنبلی یا به طبیق انداختن کارها چیست؟ شما می توانید ریشه ی هر موفقیت یا شکست را در یک عادت به خصوص جستجو کنید. آنچه که شما در طول یک روز انجام می میدهید، دستاوردهای آینده زندگیتان را مشخص می کند. عادت روزمرگی را می سازند و همه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، هر کدام به طریقی گرفتار روزمرگی هستیم. ما هر روز صبح بیدار می شویم و چنین الگویی را در پیش می گیریم. دوش می گیریم، مسواک می زنیم، لباس می پوشیم، صبحانه میخوریم، خوریم، سر کارمان می رویم، کارمان را رو انجام می دهیم و به خانه برمیگردیم. گردیم. برخی از ما برای زندگیمان خود بهبودی را برمی‌گزینیم. مثلا برای خودمان اهدافی تعیین میکنیم، کتابهای الهام بخش بر روی پروژههای مهم کار میکنیم. و از کنار عوامل اخلالگر بی اتنار رد می شویم. برخی دیگر هم از آدتهای خود ویرانگر پیروی می کنیم. مثلا کمترین کار مفید را انجام می دهیم. با سرگرمی های کم کیفیت خلاقیت خود را از میان می بریم. ناسالم ناساله می خوریم و شکست های زندگی را به گردن دیگران می‌اندازیم. حقیقت آن است که آدتها هم خوب هستند و هم بد. آنها هویت ما آنچه انجام می‌دهیم و آنچه می‌توانیم توانیم دست یا را مشخص می‌کنند. جالبین است که تمام عادات ها ساختار یکسانی دارند. هنگامی که دریافتید این ساختارها چگونه کار می‌کنند، می‌توانید با اطمینان خاطر عاداتی دیگری را جایگزین آنها کنید و آنها را به طور مداوم دنبال کنید. فرض کنیم شما می‌خواهید هر روز نیم ساعت از وقتتان را به نوشتن اختصاص دهید. چون این عادتی را می توانید با همان ساختاری که دیگران در گذشته از آن استفاده کرده اند، در خود پرورش دهید. یک هر روز مقدار مشخصی از زمان را برای این عادت در نظر بگیرید. دو برای دنبال کردن این عادت در هر روز، در ساعت مقرر برای خودتان یک یادآور بسازید. سه با تعیین اهداف کوچک کار را شروع کنید. مثلا در ابتدای کار تنها پنج دقیقه بنویسید. چهار پیگیر این عادت باشید تا مطمئن شوید هر روز انجامش می دهید. پنج برای روزهایی که حال و حسله نوشتن ندارید برنامه ای داشته باشید. شش به تدریج زمان انجام کار را بیشتر و بیشتر کنید تا آن را به روزی نیم ساعت نوشتن برسانید. اما این مثال با به تعویق انداختن کارها چه ارتباطی دارد؟ شرخ خواهیم داد. هم آدتهای خوب و هم آدتهای بد شما حاصل تکرار مداوم هستند. شما در دوره از زندگیتان عادت تنبلی را نیز در خود پرورش داده اید. زیرا که در ازای آن احساس خوب اما کوتاه مدت زندگی در لحظه اکنون را به آورده اید. اما آنچه موفق به انجامش نشده اید این بوده است که این احساسات رخفتناک خوشایند را مدیریت کنید و با وجود آنها به فعالیت بپردازید. یکی از بزرگترین دلایلی که مردم کارهایشان را به تعویق می این است که انجام آن کارها با آدادی که از پیش در آنها شکل گرفته در تعارض است. هرگاه شما می‌خواهید کاری را انجام دهید که در برنامه روزمره نیست، نیست، خصوص اگر چندان خوشایند هم نباشد، باید برای کامل کردنش اراده و تلاش بسیار به خرج بدهید. اما ساده‌ترین راه برای غلبه بر تنبلی جنگیدن با آن نیست. در عوض شما باید آن را با برنامه روزمره جدیدی که به سود زندگی شماست جایگزین کنید. وقتی که سخت این کارها هم برایتان تبدیل به یک عادت شد، کنار گذاشتنش دشوار می شود و در نهایت به جایی می رسید که آن کار را بدون اینکه نیازی به فکر کردن داشته باشید، انجام دهید. همانطور که برای کارهایی مثل رانندگی، مسواک زدن یا تماشای تلویزیون نیازی به فکر کردن آگاهانه ندارید. شما تنها به ساختاری نیاز دارید که به شما کمک کند. هر کاری را به فرایندی که به صورت روزمره کامل می شود تبدیل کنید همه ما هر از گاهی گرفتار وسوسهی به طبیق انداختن کارهایمان میشویم. و این واکنش به ویژه در مواجهه با چالشهای سخت طبیعی است راز در دست گرفتن کنترل امور این است که بدانید چرا آن کار را به تعویق می اندازید در بخش بعدی کتاب به هفت بهانه اصلی که مردم وقتی گرفتار وسوسه تعویق و تنبلی میشوند برای این کارشان میآورند میپردازیم